بلد. بسم الله الرحمن الرحیم بنامه الله که بخشای اندفاع با رحمت است. لا اقسم بلد. نه قسم به این شهر و انت البلد همین شهری که تو در آن ساكنی ووالد وما ولد و قسم به پدر و فرزندانش لقد خلقنا الانسان في كبد که انسان را در رنج آفریدهای آ حسبلي؟ آیا میپندارد کسی بر او توانایی ندارد؟ یاقولمال بده میگوید مال زیادی تباه کردم آیا میپندارد کسی او را ندیده است؟ نجعل له آیا ما دو چشم به او ندادیم ولی سنم و, و یک زبان و دو لب برایش پدید یاوردیم نجدین. و او را به خیر و شرش راه نمایی نکردیم قو حد ولی او؟ از آن گذرگاه مهم عبور نکرد و ما ادراک ملعقبه و تو چه دانی که گذرگاه مهم کدام است؟ رقبه آزاد کردن بنده است او اطعام فی یوم دی مسغبه یا اطعام کردن در روزهای قهتی یتیمن ذا مقربه به ویژه یتیمی که خیشابنده است او مسکینا ذا مقربه یا مسکینی به خاک افتاده است ثم کان من الذین آمنوا و تواصل بالصبر و تواصم تا از کسانی باشد که به هقایق ایمان آوردند و یک دیگر را به صبر و بخشایش سفارش کردند اصحاب آنها خوشبختان حقیقی هند کفروا هم اصحاب و کسانی که به آیات ما کافر شدند گروه بدبختند بر آنها آتشی است، فراگیر. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم کاری از مؤسسه قیامبر محر و رحمت صلی الله علیه و علیه, و علیه و سلم.